درو دوست سلام بر شنوندگان محترم رادیو الورتز فرشید نسر هستم اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به به شما میرسونم جایزه کاریابی برای پناهجویان شش منطقه شهری در یولند به زودی چکی به مبلغ شش ممیز 6 میلیون کرون از وزیر دارایی دانمارک دریافت میکنم چون که سال گذشته توانستن برای 271 نفر پناسجو شغل ایجاد کنند. تعداد دیگری نیز در صفحه دریافت چنین تشویقی قرار دارند. در سال 2016 کلیه 98 منطقه شهری در دانمارک 2140 پناسجو را وارد بازار کار کردند که برای هر یک از آنها 25 هزار و در مجموع 53 5 میلیون کرون دریافت میدارند. نوبت به عراق رسید بحث اخراج پناهجویان رد شده عراقی از آلمان ایالت بایرن در تلاش است که پناهجویان رد شده از همه مناطق عراق را اخراج کند اما سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق پناه وضعیت عراق را اصلا مناسب نمی دانند هرمن وزیر داخل ایالت بایرن آلمان از حزب اتحاد سوسیال مسیحی می خواهد در نشست وزیران داخلی های آلمان در شهر دورسن از این موضوع دفاع کند که حداقل پناهجویان خطرناک و مجرمان را به عراق اخراج کنند. پیش از این بحث مشابهی ای در مورد اخراج پناهجویان به افغانستان جریان داشت، اما بعد از انفجار مرگبار اخیر در کابل این ها فعلا متوقف شده است. دولت استرالیا به پناهجویان بازداشتی جزیره مانوس قرامت پرداخت. پس از آنکه وکلای پناهجویان مانوس شکایت علیه دولت استرالیا و شرکت طرف قرارداد آن برای اداره امور اردوگاه مانوس مطرح کرده بودند. وزارت مهاجرت استرالیا گفته که دولت این کشور آمادگی دارد تا به 1905 تن از پناهجویی که به اردوگاه جزیره مانوس در گینه نو اعزام شده بودند در مجموع 70 میلیون دلار استرالیا پرداخت کند مرکل در مکسیک مرکل میگوید دیوار مشکل مهاجرت را حل نمی کند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که به مکسیک سفر کرده بود گفته مشکلات مهاجرت با کشیدن دیوار حل نمیشود بلکه تنها هنگامی حل خواهد شد که قدرت ها به احوال همسایگان خود توجه کنند. صدر آلمان در مکزیکو پایتخت مکزیک بدون اشاره به نام ترامپ گفت آشکار است که دلایل مهاجرت و ترک دیار ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد و کشیدن دیوار و جدا کردن خودمان از دیگران چاره نیست. ترامپ رئیس جمهور آمریکا حد احساس دیوار میان مرزهای جنوبی کشورش با مکزیک را یکی از اصلی ترین وعده وعدههای انتخاباتی خود قرار داده و همچنین اصرار دارد که این کار را خواهد کرد. خانم مرکر که دوران کودکی خود را در آلمان شرقی و پشت دیوارهای دولت کمونیستی تجربه کرده، معتقد است بهبود کیفیت زندگی و بالا بردن ها در مناطقی که مهاجران از آن‌ها از آنجا کوچ می‌کنند، راه اصلی مقابله با پدیده مهاجرت است یه خبر دیگر از آلمان ایرانیان رتبه پنجم ورود به آلمان در سال 2017 در به دست آوردن باز رکورد زدیم از آنجا از آغاز سال جاری بیش از 77500 هزار تازه وارد وارد ثبت نام ادارات آلمانی شدند. وزارت داخلی آلمان میگوید که در 5 ماه گذشته بیش از هزار وارد آلمان شدند براساس گزارش وزارت داخلی آلمان از آغاز سال جاری میلادی 77,148 هزار پناهجوی جدید وارد آلمان شدند اعلامیه وزارت داخله میرساند که یک چهارم این آبارگان یعنی 18,879 نفر شهروندان سوریه بودند که به دنبال آن به ترتیب اتباع عراق افغانستان الکتر و ایران قرار داشتند این وزارت همچنین گفته که تعداد پناهجویان تازه وارد به آلمان در چهار ماه اول سال جاری میلادی تقریبا ثابت بوده اما در ماه می کمی افزایش یافت. آمار وزارت داخله نشان می دهد که در ماه می رقم تازه واردان به 15000 هزار تن رسید است اطلاعات وزارت داخله می رساند که از میان این تعداد سه هزار و و, و سوریایی بودند. از سوی هم اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگان آلمان از ماه جوی تا, سال... تا ماه می سال جالی و 600 پرونده پناهندگی تصمیم گرفتند. از این شمار 38 درصد آنها بر اساس کنباسیون جنب به عنوان مهاجر اقامت سه ساله یا مح... حفاظت فرعی یعنی اقامت یک ساله دریافت کردند 7 درصد دیگر از متقاضیان پناهندگی ممنوع... ممنوعیت اخراج دریافت کردند. به مفهوم که درخواستشان رد شده اما فعلا اخراج نمیشوند. در فر... در فرجام 55 درصد پناهجوان پاسخ رد دریافت کردند. با این همه تا ماه می هزار پرونده که روی آنها تصمیم گرفته نشده روی میز اداره مسئول مسئولین مهاجرت قرار دارد. بر اساس اطلاعات اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی این اداره در ماه می 877 هزار پرونده را تصمیم گیری کردند. در این میار پرونده های زیر کار در این اداره در ماه می 29 درصد کاهش یافته و به 165 هزار پرونده رسیده است. شماری پناه... شماری از پناهجویان برای ترس از اخراج اطراف به جنایات سنگین می کنند. همواره شمار زیادی از پناهجویان از ترس اخراج از آلمان خود را متهم می‌کنند که در کشورهای کشورهایشان مرتکب جنایات سنگین شدند. عالبا این قصه ها ساختگی خوانده شده. آنها میخواهند به هر قیمتی در آلمان بمانند و به این خاطر حتی اعتراف می‌کنند که در زادگاه‌هایشان به جنایات سنگین دست داده‌اند. اما در بسیاری موارد این اعتراف‌های پناهجویان حقیقت ندارد. به نظر می‌رسد که برای آنها به عنوان یک جنایتکار تلقی شدن بهتر از این است که به زادگاهشان برگردانده شود این قضیه در بسیاری از ایالت های آلمان گزارش شده یک سخنگوی وزارت دادگستری دوسردوف گفت که تقریبا مثل همه این ایالت پر جمعیت با اعتراف های سنگین جنایی روبرو شدن اعتراف ها با انگیزه صورت می که بسیار بسیار خطرناک و دردناکند. قضیه هایی از این موارد مثلا در ایالت بایرن گزارش شده. تنها نزد چند ایالت دیگر هم 20 مورد اینچنین چنین گزارش شده. در حالی که اروپا همچنان با بحران مهاجرت های غیرقانونی دست و پنجه می کند، کمیسور اروپایی در بخش مهاجرت میگوید از این پس کشورهای عضو اتحادیه که به قواعد و قوانین اروپایی مهاجرت تن ندهند مجازات میشوند و تحریم هایی در انتظار این کشورها خواهد بود. کمیسور بخش مهاجرت میگوید برای تمام اعضای اتحادیه اروپا اجباری است تا به قوانین اروپایی تن دهند. تحریم های علیه کشورهای عضو که به اندازه ظرفیت نماینده نماینده نمیگیرند به کار گرفته می شود اما دقیقا نوع تعریم ها از امروز مشخص نیست اما کشورها می توانند با تعرییم ها مواجه شوند. نماینده لهستان در پارلمان اروپا مخالف نظر کمیسیون هست و میگوید معتقدم باید با هم بنشین و دوباره مذاکره کنیم. برخی از کشورها نمی توانند کشورهای دیگران مجبور به کاری کنند که به دلیل اینکه خود را درگیر مشکلات داخلی خود هستند در این روش اثری از طادیه، اتحاد همبستگی اروپایی وجود ندارد. از آغاز بحران مهاجرت‌های تودوار به اروپا، برخی از کشورهای عضو از جمله آلمان ناگزیر به بار اصلی مهاجران را بردوش دوش کشیدند، در حالی که اغلب کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان و مجارستان آمیسترین رفتارها را علیه مهاجران داشتند. کمیسیون اروپایی وازعه تحریمها را بدون اینکه هنوز تأییدیهی ای از دادگاه اروپایی داشته باشد، در پی گرفت. دادگاه اروپایی دستکم شکایتی از دولت‌های شکایتی از دولت‌های اسلواکی و مجارستان دریافت کرده است این دادگاه تا پیش از ماه ژوئیه حکم خود را صادر نخواهد کرد یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 24 خورداد از آغاز اقدام قانونی علیه جمهوری چک مجارستان و لهستان به خاطر عدم پایبندی این سه کشور به تعهداتشان در زمینه پذیرش پناهجو خبر داد. به گزارش روزنامه رادیو آزاد، یونکر رئیس کمیسیون اروپایی با اشاره به اینکه بر اساس یک برنامه دو ساله قرار بود 160 هزار پناهجو در کشورهای مختلف از جمله در این سه کشور اقامت داده شوند، گفت که این سه کشور اکنون بیش از یک سال است که پذیرای حتی یک پناز نبوده هم نبود است آقای یونکر افسود با این وضعیت چاری نمی جز اینکه از امروز علیه این کشورها به خاطر قانون شکنی روند قضایی را آغاز کنیم ایتالیا و یونان مدت که با سیلی از مهاجران به پناز روبرو هستند و برنامه اتاد اروپا این بوده که طی دو سال 106052 را از این کشورها به دیگر کشورهای اتحادی اروپا منتقل کنند اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس سه ماه مانده به پایان مهلت اجرای این برنامه تنها کم تر از 21000 در کشورهای دیگر منتقل شده در سال 2015 بیش از یک میلیون مهاجر وارد اروپا شده و برنامه یاد شده طرحی بود که به گفته اتحادیه اتحادیه اروپا قرار بود همبستگی میان کشورهای این اتحادیه را در این حل به عظ معضل نمایش بگذارد لباتون خندون دلاتون شاد تندرستیتون پایدار شاد باشید اس.